مدتی است به سفر نرفتم دوست دارم بعد از امتحانات به سفر بروم. تو برنامه ای نداری؟ راستش نه. من هم برنامه ای برای تعطیلات ندارم. در این هوای سرد به کجا برویم؟ چرا به جنوب ایران و خلیج فارس نرویم؟ خوب است. الان در جنوب ایران هوا معتدل و بهاری است. پس می توانیم به خلیج فارس و جزایر آن برویم نظرت چیست؟ با پیشنهاد تو موافقم کدام جزیره را برای سفر پیشنهاد میکنی؟ میدانی در خلیج فارس حدود سی جزیره متعلق به ایران است اما قشم و کیش برای سفر از همه مناسبتر هستند جزیره قشم چه جاهای دیدنی دارد؟ سفر به جزیره قشم حتما برای تو جالب است چون این جزیره هم از نظر تاریخی مهم است و هم جاذبه های طبیعی آن فراوان است در ضمن یک منطقه آزاد تجاری در جزیره قشم وجود دارد پس حتما این جزیره امکانات مناسبی برای سفر دارد بله در سالهای اخیر هتل بزرگ و زیبا و بازارهای متعددی در قشم ساخته شده است در این هوای سرد و زمستانی تهران هیچ جایی بهتر از سفر به جزایر خلیج فارس نیست فکر می کنم سعید هم از این پیشنهاد استقبال کند امروز به او تلفن می کند